you yeah هوای مرده منودم می کند تنها صداست صدا که جزب های زمان خواهد شد تنها صداست که می کنه. تنها رادیو پارسان رادیوی شما موج اف ام 93 ممهی سه سلام به همه شما رادیو های عزیز با یک برنامه دیگه من و ساسان در خدمتتون هستیم امروز 23 بهمن ماه برابر با 12 فوریه هستش یه روز بسیار بسیار سرد آفتابی منفی هفتیه با احساس منفی 11 ولی آفتابیش خیلی قشنگی قبول آره. داری خیلی هم گلزنکه مدت زیادی بود که آفتاب نداشتیم ولی راست میگی که گلزنکه راست میگی چون که بلا فاصله که یک کم از اون آفتاب میری سمت سایه تازه میفهمی که نه هنوز منفی 10 درجه است دقیقا آره, دقیقا. بعد آره خالصا با هوای چند روزی به ما روی خوشش داد ولی خب فکر کنم این سرما بمونه حالا امیدوارم که آفتابی هم بمونه نمیدونم والا نهزت سرما که ادامه دارد آره. جمعه هم قراره که برف حسابی بیاد به خاطر این دوستان عزیز اگر که قرار جمعه به جایی برید خیلی مواظب باشین و اون یخ شکن‌های زمستانیتون رو حتما با خودتون در هر جایی هستید ببرید. یه مقدار برف آب شده البته تو را که من داشتم می اومدم. حالا چی یخ بزنه اونا. ولی خب آره یخ بزنه خیلی وحشتناک میشه. خب ما برنامه امروز و دوباره قسمت دیگه‌ای داریم از مصاحبه نیلوفر با کیارش در زمینه سبک‌های موسیقی و بیشتر سبک‌های راک. اون رو خواهیم داشت دیگه چه خبرایی ساینا 22 بهمن <تصفيق> هم که بود الهات گذشت و آره 23 بهمن ولی نکته‌ای که در مورد اصفهان 22 بهمن وجود داره جشنواره فیلم فجر دقیقاً که خبراشو حتما پوشش میدیم با یه سری حواشی و آره خبرایی که وجود داشت و همینطور المپیک زمستانی سوچی روسیه که اونم خبرهای جالبی داریم ازش و حتما پخش خواهیم کرد خب پس برای شروع برنامه بریم که از آهنگای جدید فرزاد فرزین که از آلبوم جدیدش به نام شخصی تازه منتشر شده اه، آهنگ با تو میمونم رو از فرزاد فرزین با هم دیگه گوش میدیم با ما همراه باشید خواب خوب کتاه تا صورت مثل ماه تا نظم دنیا مو به دی دی آروم آروم تو شدیم به دنیا از دنیا چیزی به جست و نمیخوا. تو مثل خنده های بچگینی به ترین اتفاق زندگی می با تو میمونم لحظه به شونه شدی تو دنیا میخوام که دنیا بتونه با تو میمونه لحظه دلخواه شد خب برای مصاحبه ای که نیلوفر انجام داد با کیارش تو این قسمت خواهید شنید در مورد سبکای دیگه از موسیقی راک و چون قبلش من تو قسمت های اول و دوم تاریخچه از راک بود و یه سری سبکای راک ولی این دفعه ما های جدیدتری رو داریم که کیارش توضیح خواهد داد و انشالله که از این مصاحبم خوشتون بیاد یه چند از هر آهنگی هم که صحبت میشه نیلوفر سر کرده یه سری تیکایی رو به عنوان نمونه توی اون بگنجونه ما ساینا یه برنامه نوروزی خواهیم داشت توی گولف بچه های ایرانی تدارک دیدن و خیلی دوست داریم که همه عزیزان رو اونجا ببینیم کسایی که توی منطقه زندگی میکنن برنامه روز شنبه 22 مارچ برگزار خواهد شد سالان خیلی خوبی گرفتن من عکساشو دیدم و خلاصه تدارک زیاد دیدن انشالله که برنامه خوبی رو بتونیم داشته انشاءالله باشیم میدونی اساسا پارسال یه سری مسائل پیش اومد و ما نداشتیم این برنامه سالن رو که خیلی فکر کنم همه دلشون تنگ شد و امسال هم ما رادیو پارسانیا هم می دونم بچه بچهای آیسک خیلی خوشحالن که دوباره این جشن نوروز ایرانی‌ها رو برگردوندیم یعنی در واقع بچه‌ها رو برگردوندن. آره من اتفاقا توی یکی دو تا از جلساتشون هم شرکت کردم و بچه ها واقعاً دارن تلاش میکنن که دیگه همچین اتفاقی نیفته و بتونن هر سال یه درقا. برنامه خوبی رو داشته باشن و دوستان میتونن برای اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک هم انجمن ایرانیان گولف آیساگ مراجعه کنن هم به صفحه فیسبوک ما و هر دوتا این این این خبر به اشتراک گذاشته شده. خب ساینا اگه موافق باشی بریم برای قسمت دیگه از مصاحبه نیلوفر و کیارش بعد انشاءالله بر میگردیم و در خدمتون هستیم حتما بامون همراه باشید Hey, خب در ادامه زیرشاخه های راک در واقع داشتیم صحبت می‌کردیم. دیگه قضیه چی شد برگردیم دوباره به قضیه راک آلترنتی و بقیه زیرشاخه ها خب همونطور که اشاره کردم آلترنتی یعنی موسیقی چنگوزینه این موسیقی که میتونیم توش سازای دیگر بیاریم خب خیلی مستقل که میشه خیلی سافت میشه خیلی آرومتر میشه ایندی راک میشه بعضی این, موقع این اندی راک اینم که هاردتر میشه ما در س... زیر شاخه های سبک راک سبک هوی متال هم داریم سبک هوی متال که خودش یه عالمه زیر شاخه داره مثل دوم متال دد متال و خیلی شورا دیگه هاردترین م... و سختترین تا شلوغ ترین سبک موسیقی راک من الان نمیخوام از موسیقی هوی متال بزارم چون ایرانی ها خیلی گوششون با موسیقی هوی متال دوست نیست و خب طبیعی هم هست چون این مقدار شلوغ از سازهای کوبه ای به صورت خیلی شلوغ و پر استفاده میشه از نوت های بسیار زیر و پشت سر هم و به قول ریتمیک گیتار استفاده میشه این مقدار شما قبلا راک رو شنیده باشید و بشناسید سراغ همین متال برین ولی این بین این ایندی راک و این هوی متال خب یه چیزی هست که میتونه شلوغ تر باشه ولی اونقدر ریتمیک و اونقدر سخت و هارد نباشه از زیرشاخهای آلترناتیو خیلی هستن که می‌تونیم اشاره کنیم. مثلا شوگیزین یکی از سبکاست که چرا بهش میگن شوگیزین؟ یعنی به خاطر این موسیقی مثل موسیقی هفی متال میمونه و شلوغی خاص خودش داره ولی نوازندهاش خیلی بالا پایی نمیپرن. دارسته. و شلوغی رو هنوز دارم و این در این حالی که شما... حیجان انگیز موسیقی براتون یه آرامش خاصی مم. درش هست همون موزیکه ولی آرومتر اجرا میشه اجرا میشه و آرومتر هم این مقدار از تا تحت ملودیک هم آرومتر هست برای شده اسم شو روش گذاشتم مم. گیز به من یه خیره شدن و شو به من یه کفش اینا همون انگار آدم های هستن که دارن هفی متال ایج... اجرا میکنن ولی به جا که بالا پایین بپرن به کفش هاشون خیره شدن چند یعنی چند از آرامه جالبی. آرامه که دارن خب درست. گروه های دیگه هستن که بهشون میگم پانک راک اه. پانک راک بازم شاخه از آلترناتیوه که خب در این موسیقی یه مقدار پانک خب به هر حال شما از راجب پانک و اصلا جنبش پانک در دنیا شدین دینی این مطار مقدار میخوان ساختار شکنی کنن در موسیقی راک اینا هم همینطوری هستن یعنی موسیقی راکو دارن ولی یه مقدار شلوغش میکنن در این حالی که آلترنیتیف هستن کمی آروم هستن ولی میخوان یه مقدار ساختا یه مقدار اعتراضی هستن به این سبت میگن پانک راک که خودش زیرشاخه گاراژ راک. حالا چرا میگن گاراژ راک میگن این زیرشاخه رو من دارم به طور خیلی متصل به هم توضیح میدم گاراژ راک به خاطر این بودی که بچه هایی که پدر مادراشون مخالف بودن با بارد شدن به موسیقی و اینا آشوبگر بودن اینا میخواستن گونا و حری ما رو برم توی توی گارژ خونششون رو که تمرین کردن بند موسیقی یعنی گروه موسیقی را میداختن در واقع ش باز مشابه همون کاری که خیلی از گروه های موسیقی الان در ایران در ای میکن از که بهشون در... میگن زیر زمینه زمین. که البته اینجا میگن آندرگراند موزیک بهشون دوسته. که هسته یعنی گاراژ راک و آنگراند راک دقیقا یک معنی رو میده در اینجا ولی خب گاراژ خودش سبک شد چون بچهکی که زدن انقدر رها بودن انقدر اعتراضی می که شد راک و را که زیر شاخه گاراژ را که دیگه خیلی اعتراضیه خیلی بی به قول معروف خرمت ها رو میشکنه و از این از کلامت زشت استفاده میشه و به قول معروف اعتراض خیلی بلند بلنده و موسیقی به هیوی متال نزدیک نیست به شوگیزینگ نزدیک ولی به قول معروف هنوز بین ایندی راک، سافت راک و هارد راک در اصل یعنی نه هاردی هاوی متالشو گیزینگو داره نه سافت بودن این دیراک و مثلا راک های کلاسیکو داره خب کیارش میدونم که خیلی این بحث گسترده یه بعد انقدر همینجور زیر شاخه در زیر شاخه میشه که من دارم فکر میکنم که شاید بهتر بود مثلا یه جزوه یه چیزی تو میدادیم مثلا ما قبلش بخونیم یه کاملا برای خودش دنیاییه همون که گفتی اصلا یه رشته در واقع دانشگاهیه من داشتم با تو صحبت میکردم از سبک آلترناتیف یه چیز ای میتونیم مثلا توصیه بکنی که بخوایم اینجا پخش بکنیم که یه مقدار گوش بیشتر آشنا بشه و یه تفاوتی وقتی که داری بقیه زیرشاخهار رو توضیح میدی بتونیم این تفاوتها رو خودمونم بیشتر متوجه بشیم استافورد وارد استدیو شما که شدم آرشیوتون رو نگاهی میکردم دیدم از گروه پارامور شما یه آرشیو دارید اینجا گروه پارامور یه گروهی که آلترناتیو راک محسوب میشه ولی در زیرشاخه پانک راک پانک راک میگه یعنی یه جورایی اعتراضی و سازها شلوغ‌تر زده میشه البته چون یه مقدار عاطفی شعراکی گفته میشه یه زیرشاخه ای هست که حالا من اشاره میکنم فقط برای اطلاع زیرشاخه تریه زیرشاخه تری به نام امو که از کلمه ایموشن میاد بله اموشن. حالا میتونیم کلمه‌ای از آهنگاشو من پیشنهاد میکنم یکی از آهنگاشو پخش کنین خب دوستان بشنون و خب با این سبک آشنا شیم و راجبش ادامه این پس در واقع جزء هم دوباره اینو یه ریویو بکنیم در در دردر اصل زیرشاخه آلترنتیف پانک راک و زیرشاخه آخریش ایمو emo یا ایموشناله خیلی هم خوب پس با آهنگ Let the Flames Begin از دور پارامور با ما همراه کنیم begin. Oh, ما راجع این که چجوری شد که اصلا گیتار الکتریک اومد وارد شد به موسیقی و بعد به چه صورت در دهه پنجا و شست این موزیک راک به این شکلی که امروز داریم آغاز شد و بعد حرکت ها و قدم های بعدی شده اکت صحبت کردیم برای این سبک راک کلاسیک چه نمونه هایی میتونی برای شنوندگان ما بگی از کسایی که نمونه های موفق گروه های موفق و خیلی شاخص راک کلاسیک بودن اگر کسی بیشتر بخواد با کارشون آشنا بشه البته انقدر این گروه ها زیاده اینا در دهه شصت شروع شد این جنبه گیتار الکتریک و گروه های شروع کردن که خب بهترین نوازنده گیتار الکتریک خب جیمی هنریکس بود که خب تو ایران خیلی خوب رشدن جیمز مارشال هنریکس که بهش میگن جیمی هنریکس ایشون بود ولی برای اینکه شنونده ها یه شاید قدیمی تر داشته باشیم و بچه های جوانای های قدیمی مهم. به قول معروف یه ترانه ای هست از گروه ل زپلین که ل زپلین یه خواننده بسیار بسیار بینذیر داشت رابرت پلنت که این آدم صدای فوق العاده راکی داشتین صدایی راک حالا دید خودش بحثیه که من بدم باتون میکنم ولی این آدم برای موسیقی راک ساخته شده بود و با یه دوستی داشت کها این تاریخچه های گروه لتزپرین خودش داستان و یه به نام جیمی پیج جیمی پیج یکی نوازندهی متبهر بود و من برای الان این آهنگ ها پیشنهاد پیشنات کنم از, از این گروه میخوام پیشنات کنم علتش اینه که خب یه مقدار جیمی هرئیس ممکنه خیلی تکنیکی باشه و الان دوستان که دارن گوش میکنن رادیو رو دارن راندگی میکنن مم. یا به قول معروف تو خود نشستن من خیلی آرومتری را از لتزپلیم به نام ایستر تو هیون یعنی پلکانی به بهشت که خب خیلی اجراهای مختلفی شده ازش یعنی خیلی از گروه ها کردن گروه ها. ولی خب اصولا اون اوریژینالشی اصلیش یه آیه قرآن میمونه برای موزیسیان ها وش خیلی مقدس خیلی احترام میذارم بهش چرا؟ چون خیلی شاخصه تو این سر خیلی یا, بله. یا باعث شده که مثلا خیلی جهت موسیقی های خودشون رو از این بگیرن به همچه حالتی بوده البته شعر ای داره و بسیار عاطفی شعرش در این حال سولایی که یعنی تکنوازیی که جیمی پیج در میانه این آهنگ می کنه یکی از به قول یاد موندونی تری و خاطر انگیز ترین سوله هاست درسته. کسی نیست که موسیقی راک دوست داشته حتی کسایی که موسیقی راک دوست ندارن یا علاقه منده خیلی مم. پراپا نیستن این آهنگ دوست دارند و خیلی موقع اشک باش می ریزن. حتی برای بزرگ داشته گروه لدزپلین که چندی پیش برگزار شده بارک ابامام اومده بود براشون و به احترامشون ایستاد گروه هارد که دو تا خواهر خیلی خوش صدا هستن گروه پاپ هستن پاپ راک هستن حالا به قلی ای این رو اجرا کرده و کسی نبود در سالن که گریه نکرده باشه خیلی جالب, جالب بود و خود حتی گروه که اون بالا نشسته بودن با این آهنگ اش من فکر می‌کنم بشنویمش و دوستان ببینیم که خیلی چا... خوب اتفاقا این آهنگ رو در آرشیبمون داشتیم و اجازه پخشش هم داریم پس ضمن تشکر از اینکه این آهنگ رو به ما معرفی کردی این آهنگ استر ویز تو هیون رو از ویل لثفن پخش می‌کنیم در صفحه راکت پلاستیك هم راه no یه اشاره هایی کردی کیارش در بحث قبلی به موسیقی های متال میخوام بدونم که اینا همه انواع موسیقی متال جز راک حساب میشن یا وقتی دیگه خیلی سنگی میشن یه سبک مستقلی میتونن محسوب بشن حتی سوال خیلی خوبی کردین من فکر میکنم که موسیقی متال خب مستلبه موسیقی متال سبک راکه چون مم. از سازهای راک استفاده میشه و ام... از راک شروع شدیم یعنی مشتقی از موسیقی راک و خب مسلماً های زیادی داره ما میدونیم که خب ایرانی‌ها زیاد با موسیقی هوی متال دوست نیستن چون نمی قرش شلوغه ولی بعضی هم خیلی من دیدم دوست دارن خب با... متال بازان اصلا آره ولی خب باید شما قبلاً موسیقی راک صادره شنیده باشید نمیشه یک شب یکی بره مثلا گوش کنه و حتی متال بازار خودشون درجه دارن یکی دوم متال گوش میکنه یکی دت متال گوش میکنه یکی مثلا خب به هر آدمایی های شما خیلی از دوستان به اشتباه مثلا میگن ما آهنگ Nothing Else Matters مثلا گروه متالیکا رو به عنوان آهنگ هوی متال گوش میکنم مم. یه بلد راکه یعنی یه آهنگ بلده نمیدونم تو فارسی چجوری ترجمه می‌کنن یه آهنگ غم به قول معروف آرومیه که در سبک راکه ولی خب گروه متالیکا هم به خاطر اسمش هم به خاطر به قول معروف بعضی از ترانهایی قبل از این, از این آلبوم اسم این آلبومم سلف تایتل ده یعنی دارست. متالیکا متالیکا خیلی هوی متال تر بودن دارست. تا اینجا خب به هر حال بعد یعنی موزیکای بعدیشون یه مقدار سافت تر بودن. سافت و دلوقتي. هارد راک شدن. متال با هارد راک متفاوت. البته هارد راک و سافت راک یه دست بندی کلی در موسیقی راک. بعضی از موسیقی‌ها جزو هارد راک ها میشن، بعضی میگه سافت راکن. خیلی موقع است یک گروهی هیوی متاله ولی یه موسیقی تر میزنه. مثل مثلا همین آهنگی که بهش اشاره کردم. یه موقع هستش که یه گروهی سافته ولی یه جای ایجاب میکنه که ذره شلوختر آهنگ بزنید اون وقت تفاوت خاصی در اینسترومنت ها یا اون ساز هایی که نوع گیتاری که اینا استفاده میکنن هم هست یا فقط ملودیه و نوع استفاده از اون سازه یعنی میخوام بدونم مثلا فقط صدای بلندتر یا ممتدتر یا سنگینتری تری ازش به گوش میرسه یا به چه صورتیه بیشتر تفاوت تو ملودیه یا استفاده از سازه البته سازاشون کاملا هر دوش به نظر من. فکر مهم. کنم هم ملودی حتی ریتم حتا سرعت همه اینا تاثیرگذاره این یعنی چریک موسیقی رو شما میدونید که از چند تا چیز تشکیل میشه در موسیقی که هوی متال هست همه اینا شلخته ولی نه لزومن بعضی موقع میتونه آروم تر باشه ولی یک ساز به تنهایی این کار رو انجام بده مثل درامز یعنی الزامن اینجوری نیستش که اگر بگیم یه موزیک متالی سنگین تره تعداد سازهای بیشتری هم هست به در نداره. هم. به نوع کوک ساز خیلی رب داره خب صداهاشون رو دیجوری کوک میکنن که خشنتر و پرخشتر باشه از درام های دو پداله استفاده میکنن که خب چند تا صدای سنگین تر و خشنتر بهتون تولید میکنه و خب ترانه ها رو سریع تر میخونن با صداهای خشنتر خونده میشه تایی میکنن فریاد کشیدن و اعتراض کردن و مثلا فریاد های طولانی و خشن توش بیشتر باشه دوست. همه اینا هست از وکال گرفته از ساز گرفته از درامز گرفته از سرعت موسیقی گرفته از کوک گیتار ها حتی یه موقع ساز های تولید میشه که اصلا از یک جای خشنتر ساز کوک شده یعنی شما اگه نرمترین نوت بگیرین یک خشنتر یعنی صداش خب من راجع پرد و اکتاب و اینا نمیخواهنم صحبت کنم خیلی بحث باز میشه. ولی اصولاً شلوختری این موسیقی و کسی که ارزان نمیشه به موسیقی راک معمولی میتونه بره گوش کنه برای یه حالتهای خاصی اصولا خیلی معمولا حالا میشه میگون اصولا از مواد مخدر استفاده میکنن آه. که خب یه مقدار شلوختر باشه و درسته، خایتر بشن بقیرم، نمیخوام وارد مسئله جوزی بشم ولی خب هوی متال خیلی شاخهای زیادی داره من نمیخوام راجعش صحبت کنم ولی ازشون خواهش می کنم که موسیقی هوی متالا پرشنگ بخوایم هوی متال واقعا پخش کنین خب دوستان دوست ندارن اون چیزی که به اسم هوی متال در ایران هست مثل به قول معروف متالیکا خب خیلی هوی متال نیست گانز روزسو خیلی ها میگفتن هوی متال ولی هوی متال نیست درسته. حالا هارد راک هست جزء آلترناتیو ها هست ولی هارد را... یعنی به قول معروف مت... متال نیست اینا در واقع با سلیقه و اون آشنایی گوش شنونده ایرانی شاید اونها دیگه آره اونجوزا حالا چند تا تخصصی که مسلما حالا یا مثل خودت مثلا اگه خیلی دنبال موسیقی بوده باشن و خیلی تخصصی موسیقی گوش داده باشن که مسلما انواع مختلفش رو شنیدن خب پس بر این که حالا خیلی از بحث در واقع بحث چون خیلی گسترده است اینو همینجوری بخوایم ادامه بدیم ممکنه یه ذره از دست من در بره که کجا بودیم به صورت خلاصه تا جایی که در واقع من اینجا یادداشت کردم ما راجع به راک کلاسیک، راک آلترناتیو، راک متال این دیراک یا راک مستقل راجع اینها صحبت کردیم سبکی یه زیرشاخه دیگه یه از راک هست که بهش نپرداخته باشیم چند تا گپ هستی چند تا به قول من رو فاصله نشده تو این سبکی ای گفتین گفتیم هست که باید پرشون کنیم ما سک جاز یا همون جازو داشتیم جز. که جز به کلاسیک راک ها بوده اشاره و... کردیم بهش وقتی که داشتیم کلاسیک رو می‌گفتم که گفتم ویولن سل و ساکسیفون بله. خیلی استفاده می‌شد درش که خب الان نسخه مدرنش اومده خواننده کانادایی داریم به نام جیل باربر که اصلاً فوق‌العاده است و اگر من اگه من پیشنهاد کنم بچه‌ها دسترسی دارن بالا تو آیتیونز هست تو یوتیوب همس می‌تونن برن سرچ کنند و پیدا کنند و گوش کنند. سبک های دیگه هست که خب قدیمی تر بوده همراه با راک کلاسیک باشه مثل کانتری ها موسیقی <تصفيق> سبک کانتری یک موسیقی یک نوعی فولک آمریکاییه. شاید جالب من واقعا فکر میکردم که مثلا کانتری میوزیک دقیقا یه موسیقی فولکلوره و اصلا فکر نمیکردم که جزی زیر شاخهای موزیک راک باشه اصلا استفاده از گیتار کلاسیک و من گیتار اکوستیک <تصفيق> کلاسیک بگیم شاید مثلاً یهم صوت به وجود بیاد گیتار اکوستیک سازهای مندولین مثلا سازهای مثلا به قول معروف ساز دهنی سازهایی که از قدیم در ایرلند و اسکاتلند و انگلیس هستا بهش میگن که آمریکایی‌ها هم اصولا همه مهاجرانی هستن که از اونجا اومدن موسیقی راک در آمریکا موسیقی کانتر در آمریکا شکل داد خب خیلی‌ها شما خودتون اشاره کردید به کنی راجرز آره خب بنا دقیقا یه خورده حالت فول فلور تری احساس یه مقدار قدیمی تر و کلاسیک تری میده فکر می‌کنم حالا خود کانتری هم باز زیر شاخه های مختلف یا خیلی سبک های زیر سبک های مختلفی شد کانتری زیر سبک نداره چون مم. کانتری یه سری اصول داره که باید بهش پایبند بود من میخوام توضیح بدم خیلی آره. وقتا به قول معروف برنامه رو می‌گیره خیلی آمادن از بودن یه کلاسیک بروکس بوده. بلک شلتون بوده و الان خیلی مدرن مدرن‌تره مثل مثلا گروه لیدی آنت بلوم که مثلا خب خیلی طرفدار داره الان ایرانی‌ها من شیدم که دوست دارن علاقه مندن من دیدم توی فیسبوک خیلی لایک زدن به آره، مثلا یکی از های معروفشون چه فکر می‌کنم ازشون ما ترانه داشته باشیم که بخوایم اینجا به عنوان یه نمونه خوب و جدید موزیک کانتری پخش کنیم جای شرک <laughs> از آهنگ نیدیون لیدی آنت بلوم داشت ولی به خاطر خب. پایبندیشون به همون اصول کانتی ولی خیلی نسخه خیلی مدرنیه و حالا اگه این دفعه که این پخشش میکنین خودتون هم گوش کنین متوجه میشین که چقدر اون را که به قول مرفت کانتری کلاسیک که از کینی راجرز شروع شده و به قول دالی پارتون و این آدم که اسپوردین در اینجاد گوشه های ازش دیده میشه و اون حس رو بهتون میده Reaching for the phone, cause I can't fight it anymore. Yeah. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter -hour. صدایی ما را از رادیو پارسان میشنمید خب دوستان عزیز یک خبر خیلی جالب براتون دارم نمیدونم شما اهل خریدن این چی میگن بهش لوتو مکس ها هستین این جکپات ها هستین یا نه برگاهی قره کشی یا بخت آزمایی آره آفرین <تصفيق> کارس های بختازمایی هستین یا نه اینجا بهش اسمش از جکپات یا لوتو و انواع مختلف داره حالا براتون بگم که یک آقایی در کیچینر همین بغل گوش خودمون دونیم میلیون دلار برده عجب خیلی جالبه این دونیم میلیون دلار هم البته پنج میلیون دلار بوده ساسان و چون که یه آقای دیگه ای در همیلتون حالا یا یه جای دیگه دقیقا همین شماره ها رو انتخاب کرده مجموعجبنا پول رو کنم با مگه میشم چیزی هستن مثل این که میشه پس عجیبه خیلی جالبه ما توی این فرصتی که داشتیم مصاحبه نیل و کیارش از از پخش میشد راجع به مسئله صحبت میکنیم و ساسان به نکته خیلی جالبی اشاره کرد آره یه تحقیق انجام شده او در مورد احتمال بردن تو این جایز میلیون دلاری که که تحقیقی انجام شده و گفتن اگر احتمال در واقع لغ شدن دره هواپیما در حال حرکت تو آسمون و افتادنش و خوردن تو سر یکی و مردن اون بابا بیشتر از اینه که تو جایزه اول این مسابقات رو ببری دقیقا خلاصه که این آقا در هواپیما نخورد تو سرش كم دو 10 دولار بورد دو توني البته دیگه وقتی که شانس با یار باشه اینم اینطوری میشه دیگه فکر کنم اطفان قیمت این بلیت هم خیلی کمه یک اه... نمیدم مرین یک تا پنج انواع اقسام داره آه. از یک دلاری داره تا مثلا 5 دلاری و برو بالا و تو مثلا با 5 دلار بتونی یعنی شانس دیگه اینم هست بره. آره خب ما حته تو این رادیو پارسان یه پوشش خیلی خوبی دادیم در زمینه شهردار تورنتو رابفورد که کلی داستانا و رسوایی‌ها داشت این خبر از طریق یک خبرنگار مجلی به نام ترون استار درس کرده بود این خانم اومده یک کتابی رو منتشر کرده از خاطراتش و همینطور مستندات در مورد کل وقایی که گذشت و اینکه چطور فیلمی در مورد راب فورد دیدن و دیگه باقی ماجرا این کتاب منتشر شده اخیران چند تا تهیه کننده کانادای تصمیم گرفتن که این کتاب رو تبدیل به یه محصول تصویری بکنن حالا دارن فکر میکنن ببینن آه. یا فیلم بشه <تصفيق> یا سریال بشه شاید هم یه بازی کامپیوتری این نش واسه من خیلی جالب بود مثلا راپورت نمیدونم باو شیکم قلمش آره مثلا تو شهر داری میدویی مثلا مواد میگیری مثلا دیکیو میزنی خیلی بعد جالب باشه خب بعد ول... آدما رو له می‌کنی دیگه به هر با اون وزن و اینا <تصفيق> و ولی خب بیا همچین کاری قرار رو بکنن حالا بعد ببینیم که چطوری میشه صحبت کتاب کردی البته خیلی حالا رفتی به رابفورد نداره ولی صحبت کتاب شد و یاد یه خبر خوب افتادم نمیدوم یادت هست یا ولی دو سال پیش نشره چشم تعلیق شد عجم. و این خب خیلی همه رو ناراحت کرد آره. به خاطر اینکه یکی از نشت بسیار بزرگی بود که خب خیلی کتاب های مختلفی رو منتشر می کرم. حالا بر اساس حکم هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران پروانه نشد چشمه به مندت 24 ماه تق... تعلیق شده بود ولی دوباره این خبر رسیده که این دوباره همه چی داره به حالت اولش برمیگرده و از روز 24 اومه اسفند 92 میتونن اهالی نشریه چشمه فعالیت خودشون رو از سر بگیرن خیلی هم عالی ما کتابای خیلی خوبی رو نشریه چشمه منتشر کرده بود و فکر کنم سواد ادبی خیلی از ایرانی ها مدیون این این ناشران واقع. خوبه واقعا آره در زمینه کامپیوتر چند تا خبر داشتم که به نظرم براتون جالبه نمی‌دونم این دامنه‌های اینترنتی رو شنیدید که معروف‌ترین‌هاش .com و .org باشه هر کشوری هم دامنه‌های خودش رو داره با پسند اسم خودش اخیراً یه شرکتی اومده و شرکت هایی که در واقع این این سرویس رو این خدمات رو ارائه میدن دارن دامنه‌های جدیدی با اسمای جدیدی رو دارن به اینترنت اضافه می‌کنن و البته من داشتم میگشتم ببینم خب چه دلیلی داشت که هم چیزی نبود مثل اینکه واقعا تقاضای خاصی هم نبود کل بیست و دو دامنه سطح برتر حالا اسمشون از تاپ لول دومینز و سطح برتر وجود 22 تا فقط ولی خب تصمیم گرفتن تعداد اینا رو بیشتر کنن و الان اسمای خیلی عجب غریبی اومده .camera.gallery و حتی .ninja خب و این خیلی برام جالب بود ما من خیلی دوستم یه .crokodilش رو واسه خودم بگیرم در ساعت .crokodil فکر کنم بعد اینم جالب باشه نکته بامزه اینه که یه شرکتی که مستقر هست دوبهی تصمیم گرفته اولین دام یعنی سطح برتر با حروف فارسی در واقع عربی رو اضافه کنه که اسمشو گذاشته دات شبکه شبکه فارسی آه. و این داره شروع میشه که هر زبانی این دامنه های مخصوص به خودشونو با زبان های خودشون داشته باشن خیلی جالبه ولی نمیدونم چقدر کار همه رو آسون میکنه چون خب خیلی وقتا یک وبسایتی وبسایت حالا مشخصا انگلیسی نیست یا حالا اون زبان خاصی که بیننده یا خواننده دنبالش هست نیست اما خب به چند زبان مختلف هستش و طرف میتونه بره حالا زبان انگلیس رو انتخاب کنه و اینکه تو این توانایی رو داشته باشی که اصلا در مرحله اول بتونی اون آدرس رو تایپ کنی و بری اونجا و بعد زبان مشخصه که میتونی به خونی تو انتخاب کنی خب خیلی خوب بود یعنی من فکر کنم اتفاهم بهتر باشه راست میگیم من به نظرم بیشتر درد سر ایجاد کنه تا آه. حالا یه کار خوب ولی برها یه همچین خدماتی رو دارن ارائه میدن یه خبر دیگه هم داشتم که مثل اینکه که یه بازی توی موبایل معروف شده بود بچه که بازی های موبایل رو دنبال میکنم بنامه فلاپی بر این یه پرنده بود که تو روی صفحه لمسی هی فشار میدادی و این بالا پایین میرفت و امتیاز می گرفت و خلاصه داستان این شکلی بازی خیلی ساده ای ولی خیلی پرطرفدار و معتاد کننده اه اه مثل اینکه سازنده این بازی جوون 29 ساله ویتنامیه و تصمیم گرفته بعد از اینکه این بازی معروف شده این بازی رو از اپستور اپل یا اندروید خارج کنه چرا؟ و اول مثل اینکه که شک شک بردم به این که شاید مثلا رایت رو نقض کرده بعد بایش صحبت که گفتن نه کوپیرایت رو من نقض نکردم درآمد زیاد حاصل از این زندگیم رو داشت عوض می کرد و... به خود من نمیدام دیگه این درآمدش بده به ما که دنیا شده می‌تونه کنترل درآمدش, درامدش حالا چقدر بوده؟ چقدر بود؟ پنجاه هزار 000... دلار. من این عددو بعد حواسم باشه درست می‌دونیم. این سفرش برای ما زیاد دوست داره. هزار دلار در روز. خدای من. آره پنجاه هزار دلار در روز. من خودم هم اصلا یه جوری می‌گن. ولی آره. ب... جوجه های پرنده تصمیم گرفته که این درآمد رو بذاره کنارشون. خب بره به خیریه ها ببخشید بده به رادیو پارسان چه کاریه دیگه اینطوریه آره خب خلاصه اینم از این خبرای فناوریمون حالا یه مدتی از عزیز دلمون اوی آهنگی فخش آخو. نکردیم و تصمیم گرفتم براتون آهنگی رو که این چند روز خودم خیلی گوش میدم رو براتون پخش بخش کنم به نام چیزی بگو از آلبوم شب نیلوفری با هنگسازی سیاوش قومش. قومشی کم چیزی بگو به من که از گریه خورم به من که بیصدای تو از شر شکست میخورم دلبرا کم چیزی بگو به من که گردرم به من که آخرینه آواره های قاشقم چیزی بگو که آینه خسته نشه از کسی بازال بشن گله خو نخت قط قط نظر پشتیم نظار کا تو تو هر پر, پر بشن تران خو تو من به و خوچ نره زل میگن وقتی سکوت میشنی قناریا قناری میشن وقتی تو حرف میزنی دلبرا کم چیزی بگو به من که خوام میشه تو هم به من که هم بهدر تو اما فرام میشه تو. هم بگو که آینه خست نشه از بی کسی قزل بشن گلایه ها نه هقه بلوازی نظار که از سکوت تو پرپر بشن تران فا دوباره من بمونم چه <تصفيق> سرپرستی صدای ما از رادیو پارسان میشنوید از خبرهای المپیکی رو براتون داریم. نمیدونم دوستان دنبال میکنین خبرهای المپیک رو که الان خیلی بازارش داغه در سوچی یا نه ولی میخوام با یه خبر محلی شروع کنم ساسان. حتما. یک ورزشکاری داریم به نام جنا بلاسمان که از کیچینر هستش و دیگه افتخار شهر و ملت ما هست در اینجا. چیکار کرده حالا؟ موفق شدن که در مرحله نیمه نهایی ببازن. چالی ولی نه از شوخی گذشته همین که از کیچینر تا نیمه نهایی رفته بالا من خیلی براش خوشحالم خیلی و تا خب مرحله خوبی اومده بالا حالا خبر از اون جالب تر اینکه اولین مدال طلای مشترک تاریخ المپیک رو امسال به دو نفر دادن خانم دومینیک کزین و تینا میز یا میز نمیدونم حالا چه از دیر از چه کشورهایی نمیدونی احیانا؟ And... والا از چه کشورهاییش رو نمیدونم اما میتونم بگم که به طور مشترک تل مدال طلای رشته اسکی سرازیری داون رو که یکی از انواع اسکی های دو بهش میگه آلپاین آها. اونها رو گرفتن و خیلی عجیب بود تا حالا هیچ مدال تلایی به صورت مشترک به کسی داده نشده بود خیلی جالب چون اختلاف زمانیشون خیلی کم بوده اصلا نبوده نمیدونم چطوری یا شاید با... مثلا اون یکی زنده نمونده طلا رو برداشت زدی تو سر اینم دلده. هست اینم هست شاید واقعا غیروهن در دو بدن اینم ممکنه دیده شده با... حالا صحبت از تلا... مدال شد من یه گزارشی از رقابت ها تا پایان رقابت های امروز بگم که آلمان با 6 طلا در صدر کانادا با چهار طلا دوم و نروژ با چهار طلا و تعداد کمتری نقره و برونز در مکان سوم هست جهت اطلاع که 10 روز دیگه از رقابت ها مونده برید این قسمت پینژ رو ببینید که خیلی عالیه و خیلی فراه بخشه و چرا اینطور منو نگاه میکن؟ خیلی ف... بد خیلی مفرح شده از دندون ها همه معلوم خیلی خوشحال خدا. و خداد دیگه چکار کنیم دیگه بعد ولی خب یه قسمتی پاتینا من نمیدونستم دو تا قسمت هست یه دونه حالا خیلی تکنیکیه یه قسمت دیگه از رقص روی یخه درسته اون خیلی قشنگ موسیقی قشنگ و دقیقا. خیلی واقعا شبیه رقصه و خیلی زیبا. حالا جالبی هم راجع پاتیناش که گفتی بگم امسال اولین سالی بودش که یک دختر خانم نوجوان که سن خیلی کمی هم داشت تونست مدال بگیره و همه خیلی تعجب کرده بودن که چقدر تخصص و تکنیک انسان ها رفته بالا که بچه‌های با این سن میتونن بیان تو المپیک و یه همچین مثلا مدالای بگیرن خیلی کار سختین اسکیت چون یه دونه اسکیت سرعت هست درسته. و ببخشید یه... اسکیت سرعت هست و یه دونه پاتیناج درسته. و این پاتیناج خیلی مشکل و چقدر اسید. احتمال آسیب دیدگی وجود داره توش دقیقا. و بر حال ولی خب خیلی جو... چیز قشنگی است اگر فرصت کردین حتما اینو ببینید آره و حالا اتفاق جالبی تو اسکی افتاد اسکی کراس کانتری حالا من ترجمش چی می‌خوایم بگیم ولی اسکی هستش که دیگه سراشیبی نیست به نوعی شما با اون چوب اسکی ها فقط حرکت می‌کنید مثل ماراتونه دو ماراتون تو اسکی آره زنده با بعد خیلی استقامت مهمه توش دردان. حالا سرعت خیلی چیز نیست بعد تو یکی از این بازی بازیکن اسکی باز تیم روسیه مثل این که چوب اسکیش میشکنه و سری مربی کان دایی که ادوان تو همون مرحله هم رقیب اینا بودن میاد و یه چوبسکی جدید بهش میده و اون نفر روسی میتونه بازی رو تموم کنه و این که سنهای تاثیر خیلی خران تاثیر اصلا قسمت تو دوربین یه لحظه قطع شد اینقدر تاثیر بود و... حالا <تصفح> من فکر کردم اینجا خب خیلی خبر داغی شد و خبرگزاری اعلام کردن که مربی کانادا این کار کرده و اینا یه اتفاق ای همچین چیزی برای کانادایی اتفاق افتاده بوده قبل که اولمپیک 2006 تورین ایتالیا تیم نروژ این لطفو در حق بازیکن کانادایی میکنه تو قسمت زنان که چوبسکی خانم میشکنه و این میاد یه چوبسکی جدید بهش میده و کانادا مد... این خیلی جالبه اینجا واقعا بعد تحت کانادا مدال نقره رو میگیره و نروژ چهارم میشه آره فاریکردن اصلاً, اصلا همین و ازش میپرسن که اون نروژیه میگن که خب شما چرا این کارو کردی؟ بعد میگه که هم تیمیام اتفاقا همینو میگفتن ولی نه نه نه میگه که خیلی می ناراحت بوده آره خیلی منو گرفتم زدم و میگه که نه به هر که عادلانه نباشه مسابقه نیست اصلا و این فکر کنم با تلایی جایی نوشتنی با اقتداب فردی من چویسکی دادم آره, چو آره خلاصی همچنین اتفاقی توی اولمپیک امسال افتاده رادیو پارسنان رازیه امه. از بازی خوش اخلاق این خیلی خوبه این فرپلی بازی جمال خیلی عالیه. خب ساین امیر تطلو مثل آنگ جدید داده دقیقا و میخوای معرفیش کنی که این... برای هنگ جایی ترین آهنگشه به نام بیخیال خیلی دیدم که شنوانده داشت و خیلی همه دوستش داشتن گفتیم که برای دوستامون پخش کنیم حتما. با همراه می همراه بشیدم میره میدیدم می میخندن میرخسم دلم آروم میشد بیمثب هیچ و فکر نکردم چی هستم شعرت این چیزا یعنی چی هستم همون ما خیاط بوده فکر نکنی وقت بی وصله رفقه همه چیزم مال همه اونا من فقط عوض میشه بار چم دونم تو برو قایم شو لای همه پولات تو منم اضافشم به شمار پلونات بی خیال دیزاین خونم چون دوست نداشتم عمران و دیزاین بخونم نه میخوام تو ایران بمونم تو ایران بخونم و ببینم تو از یه سری بیمار ندورم یه ساعت تایی خودم و بیکار بدونم سل بزنم از بالکون به رو روشن کنم سیگار یه دونه من بیخیال همه بیخیال پول بیخیال پرش سفید پیاده کول بیخیال اون همه سیدیگای مفت مفته بیریای گفت لا ولای اون همه تیزیای خوف بی خیال شر بی خیال کفر بی خیال شر بی خیال پست بی خیال در بسته بی خیال جفت میندازم به همه سر و شیبیای تو من بی خیال عقرب مغربه بی خیال دغدغ مشغله بی خیال عربد شربدش وست منظر مزرعه. خیال موبایل سایلنت همش مشکلم هم شلاغ نی اگه سالم بزنش اگه به حق باشه خوب نازش هستشه و بزنه برسه عقو کامل به همش بی خیال نیست که شفا به خادمه بی خیال ریس که پرواز و پرواز و ریز بدم لاشران از دیدن آشنا بیخیال این زخم رو تنم حتی اگه بریزم تو خونمم چیزی در نمیاد در بیشم اینا رو مردم خوب دیدن که بودنم بیخیال بازنده بودنم جای شنیدی سازنده منم خیلی وقتا کم آوردم خدا فیزی کردن ولی بازم که اومنم بیخیال همه خیال پول، بی خیال پرش سفید پیاده‌کوی، کول خیال اون همه سیدی های مفت، بیریای گفت، لابلای اون همه تزیای خود، بی خیال شر، بی خیال گفت، بی خیال شر، بی خیال پست، بی خیال در بسته، بیخیال جفت، میندازم به همه سر و شیبیای تو. باشه. امروز یکی از بدترین روزهای زندگیم بود انگه داد و بیداد داشتم صدام بد جویی افته ولی خب گفتم با همین صدا بخونم که تنوع تنبه باشه همه همین یادگاری باشه از روزای سخت راستی یکی واسه داشتلین بود <تصفح> به قلب پاکیش ایمان دارم برای چماشمال برای شروع خبرهای سینمایی تصمیم گرفتم برای از یکی از فیلم هایی که اخیرا دیدم صحبت کنم اسم فیلم هست Monuments من با کارگردانی جورج کلونی که خیلی نقدای ای گرفته متاسفانه بله. آره ولی خب من فیلم رفتم دیدم فیلم قابل دیدنه قابل مشاهده است و از پولی که دادید پشیمون نخواهید شد به نظرم فیلم خوبیه و داستان جدیدی رو از جنگ جانی دوبوم میگه خلاصه بریم ببینیم ما مسئولیت تصاصا رازی نبودیم پولتون رو پس میده <تصفيق> حتما حتما بعد خب ما چون وقت نداریم سریع بریم سراغ خبرهای جشواره فجر من تصمیم گرفتم اولش با یکم برنده های اصلی رو من بگم که بهترین فیلم و فیلمنامه رو آذر شهدخت، پرویز و دیگران این اسم فیلم بود هنوز عوامل رو نگفتم بعد به تایید بهروز افخمی بهترین سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو گرفت بهترین کارگردان شد احمد رضا درویش برای رستاخیز که داستان در مورد واقعه کربلاست و بهترین نقش اول زن مریلا زارعی نقش اول مرد جالبه رضا عطاران رضا عطاران خیلی و... سال بود منتظر بودیم حالا میدونی نامزدهای بقیه تو این قسمت چی بوده حامد بهداد بوده پرویز پرستویی بوده و مهدی فخیم زاده تا کنار اینا رو واقعا اتاران. به پرویز پرستویی می‌خاستی موقعیت به رضا عطارا ندی نه واقعا <laughs> آخه با سیمرغ چیکار کنه پرویز پرستویی پای ویس آره میگم. برعبدا. بعد ولی خب این فیلمای جالبی اومده. آتو ما متاسفانه فیلمایی که جایزه گرفتن از رادار ما خارج بود. من این اسم‌ها برام جدیده. حالا بعدا سعی میکنم یه مقدار در موردشون بخونم و صحبت کنم. فیلم مثلا شیار 143، اصلا فکر نمی‌کنم اسم فیلم باشه یه روزی. ولی خب جایزه گرفته. من خیلی از این فیلم‌ها رو می‌خوندم و فکر می‌کردم ادامه جمله است. بعد بی‌منبع دوباره از اول می‌خوندم. اون آذر و شاه اینا جلبه. فکرم باید گروه نویسندگانه بعد فکر من نمیدونم سینمایی که میخواد اون رو پخش کنه بعد اون جلوش خیلی گنده باشه دو تا اضافی مقبا میزنن روی اسم اون جمله آره بقیه دوستان بعد... هواشیش هم خیلی حالا زیاد بهش نمیرسیم چون صبح وقتی نداریم ولی یه مقدار سانسور شده بود به خاطر اسم یه فیلمی که نباید بود در آره. جشواره تا اولش گفته شد سری اصلا برنامه رو قطع کردن یک مسئله هم که خیلی خبرساز شده بود این بودش که اول از حسین پاکتل دعوت کرده بودن که مجری برنامه بشه بعد به علت اینکه در واقع تلویزیون دوست نداره که حسین پاکتل در تلویزیون حضور داشته باشه جشوار فجیام فهمیدن که نبات رو دعوت کن. مثل همیشه هم که چهره خانم هم که نشون نمیدادن ساسام و... که آره خلاصه یه مقدار ولی خب سالن برج میلاد بود سالن مثل اینکه خیلی آره نمیدونم اخیران. ولی سالن خیلی خوبی بود و از این بابت کیفیت برنامه خوب بود سیارامالی آره خب ما فکر کنم ساینا رسیدیم به آخر برنامه و بعد خداحافظی کنیم با دوستان دقیقا خیلی به ما که چسبید خیلی خوشحال شدیم که باز هم تونستیم در خدمتتون باشیم تا درودی دیگر بدرود انشالله تا هفته دیگر خدافز شما چشماتون روی من نبند چشمه تو زمینم صدای تو به گوشم سیباتم تنینه بسنه گوت می میرم محتاجم آغوش تو من دیونه یه بویدنه هر نفس تن با تو من بسنه می میرنم مختاج آقوشتو هم نیبونه گه بویدنه هر نحظه تن روشتو هیچی ندارم واسه تو جزی نه دیوونه جز قلبی که جامونه بود برای تو I don't need صدای تو به گوش من سیبا ترین تنینه واسه نگات می میرم و محتاج آغوش تو هم بیبونه بویدنه هر لحظه تن پوش تو واسه نگات می میرم و هم هیچی تو پوشه تو ندارم تو I don't know